سلام میکنم خدمت شنوندگان کانال تلگرامی هزار افسان، داستانهای افسانهای سوتی با کتاب افسانههای های اوکراین در خدمتون هستم داستانی رو از این کتاب بهتون تقدیم میکنم از بخش دوم قصه های سهر و جادو و اسم داستانمون هست مرد توحید است و پیرمرد جادوگر به نام خدا روزی روزگاری تو روستای خورم و زیبا خانواده زندگی میکردند. مرد خانواده گریگوری هر روز قبل از طول خورشید به جنگل میرفت و برای ارباب کار میکرد. کشاورزی میکرد، درخت میبوری، کافهاش رو به چرا میبرد و نان بخور نمیری برای خانوادش پیدا میکرد. و زندگی فقیرانه اما پر از مهر و محبتش راسی بود. گذشت و گذشت تا اینکه روزی حادثه بدی براش اتفاق افتاد و یکی از درختانی که بریده بود روی پاش افتاد و معلول و خانه نشین شد نه سرمایهای داشت که به درمونه پای آسیب دیدش بپرداد و نه توان انجام کاری داشت که بتونه برای خودش و خانوادهش غذایی فراهم کنه روزی لنگ لنگان پیش ارباب میره و میگه ارباب جان میدونی که از زمان نوجوانی تا الان که پابستن گذاشتم در خدمت شما بودم و کار کردم و هنگام کار برای شما پام آسیب دیده و نمیتونم راه برم و یا کارهای سنگین انجام بدم. از شما خواهش میکنم که کاری سباک به من بدین که بتونم در حال نشست اون رو انجام بدم و خرج و بچه رو در بیارم چند روز دیگه که ما گروس نو درمونده ایم خواهش میکنم ازتون ارباب. اما ارباب که مرد خسیس و تمکار و سنگ دل بود فریاد میزنه اون روزهاهم که سالم بودی درست حسابی کار نمیکردی من کاری برای یک مرد معدول و از کار افتاده ندارم این مشکل توه خودت فکری با حال خودت کن من پول زیادی برای آدمهای ناتوانی مثل تو ندارم اصرار و التماس گریگوری به جایی نرسید و ناامید و دست خالی به خونه برگشت چند روز دیگر گذشت و گرسنگی و نداری چنان عرصه رو بر اهل خانواده تنگ کرده بود که فریاد بچه ها به با آسمان بلند شد. زن مرد رو سرزنش میکرد که چرا احتیاط نکرد و خودش و خانواده رو به این روز انداخته. مرد پریشان و ناامید و دلشکسته بود چون هیچ چاره هم نداشت. پسر بزرگش رو صدا زد و گفت پسرم همه ما گرسنه‌ایم و من هم ناتوانم برو سبدی بردار از جنگل مقداری سیب جمع کن و برای ارباب ببر شاید دلش به رحم بیاد و چیزی به ما بده واسیلکو رفت و مقداری سیب سرخ چید و سبدی پر کرد و به خونه ارباب رفت اتفاقا ارباب اون روز مهمون داشت و برای اونا از مهربانی و سخاوت خودش در حق کارگران و رعیتش و علاقه اونها به ارباب خودشون حرف میزد. زند. سلام کرد و گفت ارباب پدرم این سیپا رو برای شما فرستاده. ناقابل، ناقابله. امیدوارم از اونها خوشتون بیاد. ارباب گفت نگفتم. سپس سینش رو صاف کرد و پرسید حال پدرت گریگوری چطوره؟ بهتر شده؟ واسیلکو جواب داد: نه ارباب، میدونی که اون معلول شده و اون نمیتونه کار کنه. چند روزه که همیمو گرسنه و بیچاره. لطفاً به ما رحم کنید. ارباب خشمگین شد و جلوی مهمونا خجالت کشید و داد زد: ای کوچولو، مزخرفات چیه که میگی؟ این سکه نقره رو بگیر و از جلوی چشمان دور شو. واسیل کو سکه نقره رو گرفت و خوشحال و دلزنده به بازار رفت. مقداری آرد و خارو بار خرید و به خونه برگشت. اون روز زن گریگوری نان و درست کرد و تا دو سه روز چیزی برای خوردن داشتن. اما سرانجام اون آذوقه اندک به پایان رسید و باز گرسنگی و بیچارگی به خونه اونها سایه انداخت. گریگوری پسرش واسیلکو رو صدا زد و گفت: پسرم، این بار برو از جنگل یک سبد گلابی جمع کن و برای ارباب ببر. شاید دلش به بیاد و به ما کمک کنه. پسر رفت و گلابیهای رسیدو و آبدار چیدو تو سبد ریخت و برای ارباب برد. ارباب اون روز هم مهمون داشت و با دیدن واسیلکو سبد پر از گلابیش گفت: ببینین مهمانان عزیزم، این کشاورزها و کارگران به من چقدر منو دوست دارن و هر روز برای من هدیه میارن. من هم مثل پدری مهربان اونها رو دوست دارم و مشکلات اونها رو حل میکنم. بعد رو به واسیلکو کرد و گفت پسرم احوال پدرت چطور خوب شده یا نه؟ واسیلکو جواب داد نه ارباب هر روز بدتر از روز قبله، نه درمانو نه داروی و نه خوراکی، اون معلول و بیکار شد و زندگی ما سیاه و تبا. ارباب جان به حال ما رحم کنید. ارباب باز هم جلوی مهموناش خجالت کشید و سکه نقرهای به واسیلکو داد و گفت باز هم دروغ میگی پسرک که ادب برو مزاحم مهمونای شریف من نشو. واسیلکو با اون سکه مقداری آرد و مواد خوراکی دیگه گرفت و به خونه برد. دو سه روز بوی غذای ساده تو خونه به مشام میرسید اما باز هم گرسنگی و فقر بر خونه و خونواده گریگوری حاکم شد. پدر واسیلکو رو صدا میزن و بهش میگه پسرم امروز بروت خونه بارو و چند تا ماهی بزرگ بهی رو برای ارباب ببر. شاید امروز هم به تو سکه بده و از این فقر و فلاکت نجات پیدا کنیم. واسیلکو رفت و دو ماهی بزرگ سید کرد و به خونه عرباب رف و همین که وارد حیات شد ارباب اون رو دید فریاد زد برو گمش پسر گدای ولگرد باز هم اومدی آبروی منو ببری و گدایی کنی و به ماهیایی گندو و گرنی هیچ نیازی ندارم. برو وگرنه میگم نوکان با چوب و چماق بدنتو سیاه کنم. با نوجوان ترسید و گریان و نوامید از خونه اون بیرون دوید و به سوی خونه راهی شد. در راه با خودش فکر می کرد جواب خانواده را چی بده. بچه ها و از کار دنیا چیزی نمی‌دونند. اونها چه گناهی کردند؟ تو همین فکرها بود که صدای مهربان و لرزان بهش سلام کرد. واسیلکو سرش را بلند کرد و روبروی خودش پیرمردی مهربان با ریشی بلند و سفید و چهره نورانی دید که لبخم میزد و نور و امید در دل شکسته واسیلکو میتابوند پیرمرد گفت پسرم چی شده که انقدر ناراحتی و غرق در فکر و اندوهی؟ چه ماهی بزرگی گرفته ای؟ کجا میری؟ با سیلک و ماجره پدرش و ارباب بیرحم و سنگ دل رو برای اون تعریف کرد. پیرمرد گفت غمگین نباش پسرم. حالا بیاییم ماهی رو با هم بپزیم و بخوریم. تا ببینیم چی میشه. خدا کریمه. اونها آتشی روشن کردند و ماهی رو کباب کردند و خوردند پیرمرد گفت در عمرم چنین ماهی لذیذی نخورده بودم اون وقت به درون غار خودش رفت و سبد واسیلکو رو پر از سکه طلا کرد و بهش داد واسیلکو باور نمی کرد که در برابر یک ماهی این همه طلا به دست آورده باشه به سمت خونه دوید و برق شادی و امید تو چشمهای گریان و بیرمق پدر و مادرش و بچه های گرسنه و بیچاره دیدنی بود. وقتی سبد سکه های طلا رو دیدند گریگوری اول به درمان خودش پرداخت و خونه و زندگیش رو سرسامونی داد و برای خودش اربابی شد و مزرعه خرید. ثروتمند و خوشبخت شد. ارباب که تغییر ناگهانی زندگیش رو میدی تعجب کرد و نتونست جلوی کنجکاوی خودش رو بگیره. رفت و از گریگوری دلیل ثروتمند شدنش رو پرسید و اون ماجرای پیرمت رو براش توضیح داد که در قبال یک ماهی سبدی پر که ای طلا به اونها داده. عرباب خودش فکر کرد اگه چنینه من چند گاری پر از هدیه های ها برای اون می برم و او در اونها هزاران سکه تلا به من میده. بعد به خونه رفت و دستور داد پنج گاری پر از اصل و نان و پنیر و پارچه‌های های گرامبه ها، تلا و جواهر و هدیه های گناه گناه تهیه کنم و به سمت پیر مرد حرکت کرد. پیر مرد هدیه ها رو دید و گفت جناب ارباب میبینم که اوضاع و احوالت خوبه که میتونی پنج گاری پر از هدیه های وسوسه انگیز برای کسی ببری حتما این کارت بی دلیل نیست میدونم که تو همه چیز داری و فقط دو چیز کم داری من آن دو چیز رو به تو میدم اون وقت رفت و دوتا شاخ گاو و یک دوم اسب آورد شاخ ها رو, رو روی سر اون و دم رو به پشت اون چسبوند و گفت حالا به ذات واقعی خودت رسیدی مبارک باشه ارباب از اون به بعد همه ارباب را به شکل گاوی می که تو کوچه و بازار رها بود کانال تلگرامی هزار داستان های افثانه ای صوتی. نشانی کانال تلگرامی تی می مهران دوستی نقتم م e وبلاگ ما a ن f a c o m mehran com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی